آقایی کریمی عزیز نمیدونم کی داری این ویس رو گوش میدی اما قطعا شرکت نوبی الماس نه سالش شده از روزی که شما وارد مجموعه شدین شروع به کار کردین، یک دریچه و پنجره جدیدی رو برای بحث تولید محتوا از نظر گرافیتی برای ما باز کردین که به شدت بنده عاشق اون دریچه‌ام و کیف می‌کنم و لذت می‌برم ازش، بسیار اکتیف فعال، با توانایی‌های بالا از ورزش، از ایده، از بحث کارهای گرافیکی، اینها همه‌شون نشون دهنده اینه که شما زحمت کشیدین، تلاش کردین، البته با توجه به سن هنوز خیلی راه دارین و دارین ادامه میدین به شدت که امیدوارم تلاش ها این صبح زود بیدار شدن ها, شب ها دیر خوابیدن ها همشون نتیجه بده و به چیزی که حق واقعیتون هست تو زندگی و تلاش می کنید برای اون هدف برسید و یه روزی برگردید عقب رو نگاه کنید و لذت ببرید و پشیمون نشید که چرا انقدر در جوانی تلاش کرید. برای تاارزی موفقیت دارم شاد و سرحال و سرزنده سرزندهرشید.